بعد نهادن و کشتن پهلوان ایران این دقیقت اونوان ها رو من دادم به توی تحنامه ایرانیش خودم دیگر. من میخواستم میسوال کنم <تصفح> چکره میبینی کلمامتون واسه جاندی کوتاه تر میشه هرچی ما الان داریم به جلو میریم این چرا اتفاق میفته اهمیت تاریخی اون کمتر شده به چه علت بوده این داستانه ما و از وضعیت داستانه داستان طولانی تر هستش خب دیگه این مثلا فرض کن که این به عنوان مثال همین داستان صوفزای و قباد بعد یه سال اتفاق افتاده اما میدونی داستان نبرد اسفندی ها رو رستم مثلا چند ده سال طول کشیده توی داستان نشون داده نمیشه ولی اونجا گسترده تره مثلا فرض کن که کین خویایی که کشور با اسطورانیان کرد حدود چند صد سال دیوستی صد سال طول کشید خب میبینی پس داستان گسترده تر میشه. اما در زمان ها نه اتفاقا چون زیادتر باشد بله. حدود گازون درازایی بیشتر کردند. این دو دا... نه این دو یک سال اون کارو انجام شده. در زمان کم هم در یک سال ما مثلا میبینیم در یک اتفاق و یک واقع هم که مثلا ما میبینیم در شاهنامه میبینیم باز مثلا طولانی هستش میبینیم اشار زیادی سلونی میشه بعد از این شما در مثلا کار بحرام و پروگوشست پاینا میبینی که طولانی تر هست به زمان بستگی نداره خیلی این به زمان تقریبا بستگی نداره یا بیشتر یا خواستن بشکافن یه علاقه ویژه و یک نگاه ویژه نه،, نه اینطور نیست برعکس نویسندگان ساسانی بهران پرگوشست رو که چوبینه کردن نام دادن دشمنی باش داشتن اما با این حال داستان طولانیه و این به فردوسی ارتباط نداره فردوسی درست درسته شاهنامه از نفر فارسی که چند بار گفتیم به وسیله موبیت شادون. از اسطوس موبد ماهور خشی از نیشابور موبدی از دان پر بهرام از سیستان و پهلوان بزرگ خراسانی ماخ اینها در به فرمان انوشهروان ابو منصور محمد ابن و توسی در توس که هم آمدن و شاهنامه ایران را از پهلوی به فارسی ترجمه کردند و بعد فدوسی رو از نصر فارسی به, به آهنگ آوای دلنشین و آسمانی خودش خودش دروورد یعنی فردوسی در این زمینه کاری انجام نداده فقط ترجمه کرده خب این داستان بله بل ادامه, ادامه میدیم بله نویسنده این نامه رو خواندند بنزیکی شاپور بن یعنی اون چیزی شاپور می‌خواست بنویسه اون همون رو نوشتند گفتون سخن هو که با شاپور گفت شدن کلک بی جاده باغر گفت بی جاده رنگ بین قرمز و قهوه‌ای داره دیگه و قلم نهی شما با قلم نهی مشق دروش بله, بله رنگ بیجاده است رنگ پشتش رنگ بیجاده است بعد وقت میگه غار جفت شد یعنی با مرکب سیاه جفت شد که کلک بیجاده باقار جفت این زدن توی مرکب تا بینویشتن چون برنامه بر مهر به نهاد بیاور چاپور لشکر برا چه آگاه شد توان سخون صوفزای همون گه بیاورد دشکرد جا این شاپور در حقیق پهلوان رایی بوده شاپور رازی بهش می وقتی که به طرف اون وقت صوفزای در سپاهان بوده که خب مرکزیت بیان داشته که کارها رو در اونجا انجام میداده. وقتی که شنید که شاپور رازی به طرف اسفان آماده به پیشواز اون برخواست نمیدونست که پشت دستان چی هست که چه آگاه شدون سخون صوفزای همان هم گخ بیاورد لش گرد پذیره شدش با سپاهی گران. گذیده سواران جوشن بران. رسیدن پس یک به دیگر فراز فرود آمدندان دو گردن فراز از از فروت برای احترام هم. به پس نامه شهریار سخون هر گونه دشخار و خار. ده. چه آن نامه رو خاند شاپور، گفت که اکنون سخن را نشاهد نهفت تو را بند فرمود شاه جان دستو داد که تو رو به بند بکش فراوان به پیش ما چون این داد پاسخ به دو پهلوان که دانات مرا شهر یار جان داند یعنی میشتوسه. بدان رنج سختی که بردم ز شاخ برفتم ز زابرتتان آسفاخ به مردی را حانیدم او را زبند نماندم که آید به رو گشت گزند، که بند است پاداش من، تو را رهنمودن به پرخاش من، فرمان او هیچ گونه ما گرد. چو پیرای دون بند بر پای من. تبخون های ما دوستان ما آماده هستن صدای شما و سوالات شما رو ضبط کنن در پایان برنامه از استاد فریدون جنیدی پخش کنن که استاد جواب بدن ساعت 22 و 21 دقیقه هستش و ما یعنی استاد فریدون جنیدی از داستان های شاهنمه برای ما میگویند و میخواند ارز میکنم خدمتتون که تبخون های مادی 20 و 20 چار هشتاد و آرامتر خودم به خودم بگم دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست <تصفيق> و بیست, هشتاد و, و, بیست و هشتاد و هشت دو صفر دویست بیست و هشت دو صفر و شماره پیامک سی هزار و, و هشت سی هزار پنجاه و هشت دوستی پرسیدن باسلام و درود بر استاد جنیدی چرا در شاهنامه اکثر اتفاقات جنگ است جنگ پادشاهان است آیا تاریخ ما فقط جنگ بوده؟ ما محول جنگ نداریم میانه این صلح فرسون که سوص حقیمت به رفت به اسف سپهاام و به حول چیزات به تمشیت امور و کشور پرداخت اما می که این درخشان تره یعنی درسته که کار او اومدن و نجات دادن مثلا قباد بوده و این درخشان این رو نشون داده و بعد باز در حقیقت نامردمی پی قباد در او خیلی خودشون نشون میده در مرتبه اینو رو پیش و یعنی البته در آغاز که ما پادشاه نداشتیم خوشبختانه ما همینه هر کاری که در آغازش رو نامه. همه کار مردمیه آمدن مثلا رشتن و باختن و فرش و نمیدونم خانه و ایوان و خشت و گل و پدیدان رو آمدن ساعت و کاشموری همه مردم کردن منطقه از یه زمانی کم کم کسانی به عنوان پادشای آمدن حاکم شدن بر جان مردم خب اونا این اشخاص بیشتر ناچار برای که پایگاه خودشون رو کنن جنگ هم میکردن و پرسیدن که اَلطیما من میدونم یعنی چند بار شما گفتید دوستان حالا این از سوالات مثلا چون همش خودمه من میگم بازم بگیم کرماشان گفتن به چه معنیه شان پسندش یعنی جایگاه در ور کوشان هست در روشان هست در موشان هست در پیشوند مثلا شاندیز هست در شانگرما هست شان یعنی جایگاه پسند جون کرمان در زبانه عوستایی ایری بوده یعنی رشت کوه میدونید که خب شهر توی یه رشت کوه اصلا بنیان گرچه پس از گسترشش بیروی شهر و بیران شدن روستاها تو دشتم کشیده شده به تازه من رفتم چند سال پیش تو دشت کشیده شده ولی بله قبلا تو کوه بود حتی شهر تو کوه بود یعنی جایگاهی که یعنی شهری که در میان یه رشت کوه ساخته شد این نام در کرمان هم هست. شهر خوب است چما یه کتاب در این زمینه. من یه گفتار در این بله. تو سایت بنیاد هست به. و از میکنم لاین یعنی چی؟ لاین هم نام یه روساییه جایست یه هم... همون یان یون. بازم هم همون جان و گان و شان و اینها پسفند مکان است یه اون یان هست و لا پیشوندیست که باید دید که به چه دلیلی این لا. شاید لان یین بوده چون میدیدین مثلا ما وقتی این جایگاه یعنی دو بار جای رو از نام میبریم جایگاه هر دوتا شما نیذاره مثلا میگیم غندهار قند یعنی کند یعنی شهر یعنی جایگاه هار هم یعنی جایگاه این اینا دو بار نام برده میشه ما بعدی جاید داریم که سه بار یک مفهوم نام برده واژه در واجه درخونگاه خیابون بوزر جمعیلی الان من نمازم بوزر چی شده درخونگاه دیگه محلی درخونگاه در خانگاه خانگاه یعنی خانگاه دیگه خود خانگاه دو, ما دو واجه است یک معنی داره یعنی خان یعنی جایگاه گاه هم یعنی جایگاه بنابراین احتمال قوی لاین هم باید لان یین یان باشه جایگاه یعنی سلام و درود بر استاد جنیلی. استاد تب د خودتون حدوداً سی سال است که با شاهنامه زندگی می‌کنید. آیا هیچ خسته شده‌ای برای شما آن تازگی را داشته است قسمت آس پاس؟ حدود سی سال نیست من خیلی از دورم کوچکی. ولی شد خوشبختانه این خوشبختی بزرگ برای من بود که ویروش شاهنامه بدون خودم بدونم بعدم فهمیدم سی سال به تو انجام کشید شاهنامه یک آسمان درخشان ستاره بارانه که هرچقدر با به نیروی بالهای اندیشه دارو پرواز کنیم بیشتر نیرو به انسان میده و هیچگاه خستگی برای انسان ها نمیاره من خسته نشدم و هر زمان از شاهنامه نیرو گرفتم امیدوارم که فرزندان ایرانم این رو درک بکنن و برای گرفتن این رو به این آسمان ستار باران درخشان پناخ ببرن این سؤال هم من بپرسم هر بار برای شما یه تازگی یک مطلب جدید داره یعنی شما که هر بار میخونی به یه مطلب جدید میرسید این اتفاق میفته یعنی این حرکت این رو به جلو حرکت رو به جلو فهم بیشتر بله اینطور گگا می‌بینی من اینجا یادداشت میکنم همینجا بله یه مطلب می‌نویسم بله یک یه چیزی که تا به حال بهش نرسیده حالا می‌رسن خودم دارم یادداشت میکنم دیدید بارها دیدید که افتاش کردم برنامه مثلا روی پنجره‌ای رو محترمم خوب یک کوکی بوده می‌بینید زمینه گفت در, در, در, در این بله اینجوری شده بله می‌خاله یه یک از خود برنامه‌مونم بگی. اون دیگه شما بگین خب می فرمونید دوستان ادامه دوستان یا تو ماشه که از گفتار او هیچگونه مگرد چپی رایدان بند پای مرد حالا من اینجا برای شما یک که چیزی رو میگم تا ببینید که مفهوم این چپی رایدان بند پای مرد چیه خب یه پهلوانی که پدرشم پهلوان بوده و از بچگی سوار اسب شده این ده تاخته و اونیشورت با, با شور زندگی کرده حالا به این مقام موقعیتی رسید که پادشاه رو رفته نجات داد و به تخت نشونده به پاش بند آهنی همونجا آهنگر میارن و با دستشو پاشو می‌بندن کسی مفهوم این اینو قدونی میکنه حالا مگری که من روشنگری کنم برای این کسی که تا پاشو بستن و دستاشو بستن این دیگه نمیتونه سوار اسب بشه مذهن این چطور از سپاهان تا تیسفون راه یعنی به شکم رو پشت خیر بندازن ببرن میرین همین فقط شما این رو در نظر بگیرید در یه روز ده ساعت حرکت که کسی سرش پایین باشه پاهاش از اون برای بزن باشه روزها هفته ها از سپاهان تا تیسفون اقالا یکی دو طول میشه دیگه کاروان بخواد حرکت کنه این پهلوان ایران اینطور ای خون تو مغزش چند میشه تو چشم آشان میشه یه جای بدنش آخو شما این همین خارش رو در خور خارش از یه تو توفنگ بدتر یه وقتا واقعا انسان رو می آذاره که حتما باید بخارون این نمیتونه دستاش بسته است پاهاش بسته است سرش آویزون پاهاش آویزون این چه ستمیه همین هیچکس به این فکر نکردم خوش میشه من،, من من فکر کردم خب چطور اینو میبرم این تو غیر از این طور دیگه نیست همین طور میبرم بیچار پهلوانی بچ تو بشنید چاپور پایش ببست بذرد نای رو اینو خود برنشست بیا از بردشست پارس پیش قباد قباد از گذشته نکرده ایچیاد به فرمودکو را به زندان برند به نزدیک ناهوشمندان برند یعنی ببرند به یک جایی که به زندانی که قاتلا و لاتا و چاکشا و اون و کسان اونو در اون زندان هستن یه پهلوان یه پهلوان ایران رو نشاننده شاه برگاه خب توی یک هفته بگذشت هر رای همین راند با موبات از سورت چون این گفت پس شاه را رهنمون این موبات میبینید که این مشاوران و پازشان همین موبدان بگن که یارند با او همه تیز فون گروه اندر ایران بماند درست زه شاهی به باید ترا دست بر برعکس به جایی که رحم بشه به سورینیکی میگه نه همه تیز با او یارستن و با باز به زودی خیزش میکنن با او میکنن پازش هم میکنن همین موشها برام همین موشها برام در ایران به مانت درست زه شاهی به باید ترا دست چست چوبشنی محتر زموبت سخون نیا ورد یاد از نوید نیاورد یا دوز خور که بفرمود تا پستاش بیجان کنند برو برو برد دیده پیچان کنند. تیزش ایرانیان بند برنهادن قباد را چاگاهی آمد به ایرانیان که آن پیلتن را سر آمد زمان برا ایران و برخواست کرد همین هرکسی کسی کرد سازه نبرد همین گفت هرکس کس که تخت قباد اگر صوفزا شد به ایران مباد یعنی اگر صوفزا مرد تخت قباد هم به ایران برفتند یک سر به ایوان شاه زه بدگوی پر درد و فریادخواه فریادخواه یعنی یاریخواه کمکخواه کسی را که بر شاه بدگوی بود بر اندیشه بد جوی بود گرفتند و بردند از ایوان کشان ز جاماست جستند چندی نشان از برادرش که او رو پادشاه کند ورا برگزیدند و بنشاندند به شاهی بر او آفرین خواندند به آهن ببستند پای قباد ز فر رو نژادش نکردند یاد خب این حالا این منظره رو در نظر بگیرد یک شیشه شکسته نشده تیسون همه بلند شدن همه سازه نبرد کردند. همه رفتن اطراف کاخشا یک نفر بیگونه کشته نشد وقتی که کسانی رو که بدگویی کردند نز شاه، از سوفزای اونا رو گرفتند از ایوان کشان بردن و پای قباط رو بستند، یعنی اینکه این خیزش ایرانیان یه خیزش فرهنگی بود خونالود نبود خونین نبود پر با هر جمعه همراه نبود و یه خیزش بود فقط و اینا وقتی که رسیدن اونجا بزرگان شهر رفتن داخل کاخ چون اگه قرار بوده همه بریزن خب حتما یه جای میشکسته چیزی که خون بیگناه ریخته میشده یه خون بیگناه ریخته این خیزشه این نامش انقلاب نیست به نظر من یکی از نقط نق... ننگامیسترین نقطه تاریخ جهان همین انقلاب به قول خودشون کبیر فرانس هست که اینطور طور گیوتویم بسازن اینطور خون بریزن کسی به کسی نبوده هموطن بکشینش باید حتما بگن هموطن نگن مثلا آقا یا موسیو یا مادام وقت اون رو به سپوری جلاد بیاد اینطور طور آخه شما در نظر بگید هی این تیغه بره بالاهای گردن بزنن خون توی این کچه های پاریس تازه چما... بگن انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسی فرانس... برای که نادان هم برای که یه خورده درک داشته باشن این کار واقعا نقطه ننگ تاریخ بشریه و درست داد به انقلابات پسیم همینطور مثلا فرض کنین که وقتی که در روسیه انق... بقول خودشون انقلاب کردن وقتی که تزار رو کشتن تزار دو تا دختر داشت 12 ساله و 14 ساله لنین که سالها دیگه خدای کمونیستای جهان بود لنین لنین میگفتن و چشماشون میدرخشید لنین دستور داد این دختر دوازده ساله و چهارده ساله رو بندازند توی مختن اسید سولفوریک گرم و این دوو دختر لطیف چه باید ببینند و چه باید بکشند تا بمیرن اینا چه گناهی کرده بودند حد اکثر دستور میدید بکشنشون تیر و توفنگ بود دیگه یه باید تیر من خلاص کنم این لنین و در زمان لنین و استالین که اینا رهبران نمیدونم برشویزم جهان بودند و یعنی قطب زندگی کومونیست بودند و ما در همین ایران میدیدیم که سینه پاره میکردم براشون سی میلیون نفر آدم بیگونا کشش شد سی میلیون نفر رو کشند بردن سیبری رو کشتند اما ایرانیان اینجور خیزش ایرانیان دارد نکردند. این خیزش ایرانیان نکردند اینطور خیزش داشتند خیزش داشتند خیزش نه انقلاب خیزش برای اینکه همه کار رو به سامان درسند دیدید که این کار کرد؟ کردند خب م... یکی پور بود صوفزار و گذین خردمند و پاکیزه و پافرین جوانی بیازار و زرمیر نام که از مهر او بود پدر شادکام، ببردن بسته به دو شاه را، به گونه بود رای بدخواه را، که آن مه... یعنی کسانی که بدخواه شاه بو شده بودند با این کارش، اونو دادن به پسر صوفزایی که اون کینه پدرش رو بکیشه. که آن مه... مهربان کینه صوفزایی بخواهد به درد از جانکت خدایی. بی آزار زر مهری از آن پرست، نسودی به بد با جهاندار دست، یعنی آزار نمی به قباد. پرستش همی کرد پیش قباد، بد نکرد، هیچ بر شاهیات، یعنی یک بار پیش اون گفت تو پدر کشتی. جهاندار از اون ماند اندر شگفت، ذکردار اون مردمی برگرفت. همی کرد پوزش که بدخواه من، پرآشوب کرد کردختر و ماه من، گلی که یابم رحاویزه بند، را باشم از هر بدی سود من، زدیل پاک بردارم آزار تو، کنم چشم روشن به دیدار تو. هم بگم داستان به جای شیرین رسیده نکنیم نکنین اد تلخ آره. آره, آره. من میخوااستم بگم اینجوری یعنی به جای خوب خوب که نه به مهم رسیده آره درست سرش این نه مو به کم نکنیم به جای مهم, مهم رسیده آره نکنیم. <تصفح> <تصفح> مهم دسته و یه جای حساسخوااستم بگم پرت نکنین دیدم نه نظرره شنی داری وقتی ما میشم یه حس و حالمون اصلا چیز میشه ولی شاید میگم من گفتم شیرین نمیدونم یه, یه جوری آدم میشه با با توجه به خانش که شما دارید و میخونید اصلا آدم یه اتفاق دیگه یه آدم میشه این همه زغم شده بهش چیکار نمی‌کنه مردومی می‌کنه. آلو قشنگه واس این ماشین خیلی زیباش بله. حالا ما نمی‌تونیم من بگیم حالا ما نمی‌تونیم حتما بگیم حالا نمی‌تونیم حتما بگیم زیباش خیلی بعد یه بخش تلخه. باید. باز بود می آدم با وجوها میمونه یه چه من احساس بکنم استاد جاندی واجه ها باقی کم میاره در مقابل یه خب همون که من به شما گذارم که شاهنامه آسمان و سطور برانه همین. خب اگر اجازه بدید ادامه این داستان رو در هفته آینده داشته باشیم. خب تلفن های شما آماده هستش. 22 و 40 هستش. تلفن های زیادی شده. بیا مکالمه های شما هم هستش. منطقه ها تلفون ها رو و استاد پاسخ خانده بفهم. نام یزان پاک با درود در هدایتی عزیز و با درود بر در استاد فرزانه فریدون جنید من چون استاد در برنامه های پیشین یا همان پسین در مورد واژه سوگند یه توضیحاتی داده بودم اگر میشه امشب استاد باز هم یه توضیحاتی در مورد واژه سوگند بدم شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید با هستم از اسلامشر دروت بر شما سواد باشید واجه سوگند در عویستا بوده سعوکند وند وند پایانی همون ونده یعنی با بسیگی و دارایی سعوکند یعنی سوزاننده سعوک، سوچ، سوگ همه اینا سو، سختنه این و این کاربرد گوگرت بوده گوگرت چون سوزاننده هست آب گوگرت رو به می دادن به خوردن کسی که در یک کاری گناهکاره اما گفت نه من گناهکار نیستم اگر آب گوگل تاثیر سخت رو اون شخص میگذاشت معلوم بود که دروغ گفته ولی بارها دیده شده که اشخاص بیگناه در گفتار خودشون به قدری پاک بودن که تونستن در برابر این چنین چیزهاییاتو مغم ماتو کنن اینه که آب, آب گوگل رو می‌خوردن و روی تنشون تاثیر و در اون محاکمه پیروز می‌شدن اما سوگن دو جور بوده ور که یعنی ور یعنی چیزی که باور بینجامه ور گرم بوده یکی ور سرد بوده ور سرد همین سوگند بوده یعنی آب گوگرد بوده و ور گرم گذاشتن سیاوخش بیگناه آزاده پاک ما از آتش اونا فهمیدن که در مورد تقدم و تاخیر اسامی که ذکر میشه در مورد جنگها من فکر می‌کنیم به صفراغن برعکس بوده توی جنگ ایران و عراق هم همیشه گفتیم جنگ ایران و عراق نگفتیم گفتیم جنگ عراق و ایران در حالی که تقدم و تاخیر این شکلی نبود این جنگ ایران با عراق وقتی که تجاوز کرده ما ما با اون می‌جنگیم این جنگ تقدمش با ما هست در حال این خواستم خدمتتون عرض کنم متاکرم خدا نگه دروت بر شما نامتون نگفتین از روان کردین سپاس ولی بدونید که وقتی که اراق به ما حمله کرد ما دفاع کردیم ما جنگ نکردیم و جنگ رو اون ماجر روزیهان آغاز کردن جنگ عراق بر علیه ایوزان بله ما دفاع, ایزان. دفاع کردیم بله. افتاد جاندی انون شه بوی دارم که شاید با برنامه امشب شما ارتباطی نداشته باشد ولی همیشه در اندیشه من بوده است چرا نقش عقامنشیان و اشوانیان در شاهنامه بسیار کمرنگ بوده است بویژه عقامنشیان با سپاس بیژن تلیانی شاگرد همیشگی آن استاد ارمن درود بر شما باید بدونیم که بعد از حقامنشیان اسکندر آمد و تمام کتاب های ما رو سزند و همه دانشمند ما رو روی اون آتش زد و همه دانشگاه های ما رو از میان برد غالباً باقی ماندن تاریخ زمان حقامنشی یه چیز خیلی خیلی دشوار و دور می با این حال در همین بخش اندکی که مونده ما در از یکی از بزرگترین کارهای علمی جهان آگاهی داریم و اون کندن است که امروز فرانسویان کندن به نام کانال سوئز که این آشیانه کندند فرانسویان رو به دریاچه تلخ راه دادند و به نفع خودشون خواستم به اصطلاح راه رو کتاتر بکنند که ما دریاچه تلخ رو دور زدیم و به جایی رسیدیم از رود نیل که نشان از آقاقی عمیق ایرانیان از آبخاست و آبخاست، یعنی اون بدوباجهی که برای جزرمد انتخاب کردن بوده و یک کار بزرگ دانشی جهان در همه دورانها این کار بوده که خوشبختانه در شانه ما آمده تا با حال کسی نفهمد که همین حالا این کلیدش خداوند خسروان روان فردوسی خواست. یا روان نیاکان خواستم به دست من زهامون بر آمد به کوهی رسید یکی بدید. بفرمود که از هند و از رومیان راز کاراز موده ردان گشایند زان آب دریا دری رسانند رودی به هر کشوری این کار بزرگ دانشی مونده ولی اگر بقیش نموده اون تقصیر آتشسوزان اسکندره و اما از اشکانیان چیزی نموده او گناه بزرگتر اردشیر ساسانی است که تمام آثار فرهنگی دوران اشکانی از میان برد من چند بار گفتم فقط چند جا چند اثر کچیک چند تا مجسمه چند تا مور در نسای مربو در کوزستان و در لاخمزار بیرژند و اخیراً در در افغانستان گرامی پیدا شده اون تخصیر و گناه بزرگردشیر که در حقیق شیوه بزرگ شاهنشاهی فدرال ایران را از بین برد و همه آثار فرنگ اونها را از میان برداشت با سلام و عرض ارادت شب بخیر حضور محترم آقایان هدایتی و استاد گرانقدر سوالی داشتم از حضور استاد مبنی بر اینکه آیا کتاب کرشنامه گزنفون صندیت تاریخی محکمی دارد میشه بهش استناد کرد یا خیر با تشکر محمد آشوری هستم از بهشهر مازندران خیلی ممنون درود بر شما و درود بر تبرستان و اون جنگل های زیبای سرسبز این است که بعدا به وسیله دانشمند بزرگ بزرگوار امیر مهدی بدی نقد شده و شما اونجا مواردی که نادرست هست اونجا به خوبی می‌بینید مواردی هم که اتفاقاً درست هست در اونجا اشاره شده من در یک جلسه نمیتونم در این باره صحبا بگم شما رو راهنمایی می‌کنم به کتاب عظیم 15 جلی یونانیان و بربرها که اخیراً به وسیله ترجمان گرانقدر آقای مرتزا ساقفر ترجمه شده به فارسی. با اونجا مراجعه کنید و درستی و نادرستی رو دریابید. کلمه ال یعنی چی اگر لوت کنند بفرمن ال یعنی چی به زبون فاسی درود بر شما از آوای دلنشین سخنتون پیداست که مادر هستید. ایل در زبان فارسی همون ای این است که بنادرست ایل تلفظ میشه. ایل یعنی خانواده. یعنی مجموعه خانواده هایی که از یک نژاد هستند. این در تلفظ با ایل گفته بشه که بنادرست ایل میگه. ما ایل میگیم غلط میگیم. بله ایل باید گفت. ایل بختیاری. ایل بختیاری بله. ایل مث تاقییکی هستم از بندره جنع الانکنناادوی هستم درود گرم و خدمت شما و به برنامه خوبتون مسیم حالتم در مورد دریای پاس بندره گع اسم اییاسک چیزی میدونن بگم که جنور نامش از کجا آمده درود بر شما و به اون امواج آبی ملایم دریای پارس و شما یک ساحل نشین دریای پارس استید مثل همه ساحل نشینان میگین دریا هیچگاه نام عربی خلیج رو بر این ساحل نشینان بر این دریا نگذاشتن دریای پارسه و پیشتر در زمان در عوستا پوییتیک بوده بعد در زبان نامش اومده و در زبان پهلوی هم و دیگه در زبان فارسی دریای پارس خونده شده درود بر همه ساحل نشینان دریای پارس ما خودمون نبر این لقب عربی خلیج رو به اینجا اطلاق بکنیم در بندهش اومده که سه دریای شور اینند واژه بندهشه منطبه زبان فارسی سه دریای شور مایه هست یکی پوییتیک از همه بزرگتره یعنی دریای فارس یکی دریای کمرود یعنی دریای مازندران و تبرستان و گیلان و یکی دریای سیابون یعنی دریای سیاه ببینید که مرز ایران تا اون, تا اون دریا بوده میگه در دریای در حقیقت پارس پویتیک. آبخاست و آبکاست هست در اون دو دریا میدونید که اونا چون بسته هستن آبخاست و آبکاست ندارن ولی در دریای فارس آبخاست و آبکاست هست گناوه هم نمونه دیگرش هست در شانه اومده به نام کناوات کن خود هم واژه جایگاه و خانه رو برمید که در واژه گناوه تبدیل به گن شده و پیشوند خانه است آوه هم مثل چیزی که در ساوه هست یعنی جایگاه شاد باشید من یک بار من برای ما رو دیدم بله و اون انواج آوی زیبا اون دریا هایی که بحث میکنه ما رو به بیکرانگی دریاهای های جهان سلام خدمت استاد گرامی جناب جنیدی ایران دوست سلام خدمت آقای هدایتی مجری خوشخلق برای دومین بار است که زنگ زنم خدمت شما تا بپرسم در واقع نام بروات که با اون برا هم میگویند به ساکس در سفر نامش قریب یکصد سال پیش نام بروات را بوره نوشته است و گفته است که بزرگترین و پرجمعیتترین روستای بم است و قریب پنج هزار نفر جمعیت دارد استاد بزرگوار اگر ممکن است توضیح بیشتری درباره این نام بفرمایی که اصل این کلمه چه بوده است و دارای چه معنی می باشد متشکرم از بم قود یوسفزاده ام درود شما، شاد باشید. من درباره نام‌های ایرانی یک مقاله خیلی مفصل نوشتم در سایت بنیاد نیشابور هست به نام پژوهشی در باره نام کرمان. وقتی که شما کرمان رو همه جا میگن که از کرم گرفته شده، حتی متأسفانه نویسندگان داستان دروغ در کارنامه مرضی روباکان اون رو همه‌جور کرم و بواسطه با به کرم دونستن. و در شاهنامه هم همینطور اومده و من پ... بریافتم که اینجا گعیری ای بوده نمیان کوهستانی شما اگه وسط شهر کرمان از با... کوه... که فراز کرمان است که امروز در حد کویستان عمومی شده نگاه کنید میدید چند تا گعیری یعنی رشت کوه در داخل این درشت هست وقتی که گعیری نمان تبدیل شد به یه شهری که مثلا با نام کرم همراه باشه ببینید که نام ها تغییر پیدا میکنه من شما رو راهنمایی نمی به به اون اون مقاله خیلی چیزا به دستتون میاد شهادو پیروز باشید چندین تلفن مانده از شما، ترامت های شما مانده و شرمندگی برای من که نتونستم این رو کنم و استاد آماده هستند. منتها زمان این اجازه رو نمیده، استاد جانه ایدی. اینشان در فرصت های بعدی باز هم شما تماس بگیرید در برمه های آینده ما استاد پاسخ خواهند. بیدرود اون کسانی که با ما تماس گرفتید و پاسخ از ما نمیشنوید با همه جان و با, با همه روان و مهر خودم به شما شب ش قربان شما، عرض میکنم تقیه کننده برنامه سرکار خانوم هانی حسینی، صداوردان آقایان احمدی و حیدری، همهنگی برنامه حسین تحماصبی، همهنگی پخش آقایان مظاهری و ابراهیمی، ارتباطات آقایان کگینی و آقای باهری، منم همین جزا هدایتی راد، ایرانیان شب بر شما خوش درود و بدرود بر شما.